سوره مبارکه هجر واقع میگویند سنگ راه هجر اصل معنی را میگویند اما اینها در جای زندگی میکردن که سنگلاخ بود کوهستانی بود کوه مانع است کوه نمیذاره که برای انسان آسیبی برسد سیل راهم نمیذاره بعد و طوفان راهم نمیذاره و کوه یک نعمت بسیار بزرگی هست لذا اینها اصحاب هجر بودند اما وقتی که خدا را نافرمانی کردند خدا ماخذه ایشون کرد لذا ربط این سوره با سوره گذشته با سوره ابراهیم اینه که از سوره یوسف آمده بحث توحید و در, در سوره یوسف با دلایل اقلی و نقلی ثابت شد و تبدیل یک مسئله بدیهی شد در سوره رعد کشماخندید یک سری تنبیهات و یک سری توضیحات بیشتری بود در سوره ابراهیم و قائد دنیاوی و اخروی بیان شد الان هیچ خفایی و پوشیدگی در مسئله نیست الان در سوره حجر خدا بیان می‌فرماید که تسلیم بشید توحید را قبول بکنید و الا پشیمان میشید. و مثل اصحاب حجر بر شما عذاب نیاید اصحاب حجر کیا بودند قوم صالح علیه السلام یا قوم سمود اینها در منطقی بین شام و حجاز بین شام و حجاز در کوهستان زندگی میکردند وقتی که از حجاز از مکه مدینه میرفتی به طرف شام می توانستی که جای قوم سمود را ببینی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که به تبوک رفتند از کنار سمود رد شدند و به صحابه گفتند از اینجا سری رد بشید که اینجا جای عذاب هست اینجا عذاب آمده معلوم میشه که جاهایی که عذاب خدا آمده اون جاها را انسان برای تفریح نره بعضی مردم میرن تفریح میکنن دولت ها اونجا را جذابیت دادن اونجا پارک گذاشتند اونجا برای بچه‌ها ها سرسره گذاشتن برای مردم سایه گذاشتن که مردم اونجا بشینن اونجا استراحت کنن اینا این درست نیست رسول الله از کنار جایی که عذاب آمده سریرت رد شدن اونجا جای خوبی نیست بالاخره از کنار اصحاب حجر رد شدن از کنار قوم سمود و فرمودن زود از این رد بشین پس این مناسبتش که خدای تعالی اگر شما باوجود این همی دلایل اگر قبول نکنی خدا همون عذابی که بر اصحاب حجر آورد بر شما هم میاره و خلاصه این سوره اینه که در این سوره دو تا دلیل عقلی ذکر میشه یکی مفصلی که مختصر پنج نمونه تخویف دنیوی سه تا مال اقوام گذشته دو تا مال خود قوم رسول الله بیان میشه و پنج تسلیح است برای رسول الله در این سوره اللہ می فرمات این از مقطعات هست تلک آیات الكتاب و قرآن مبین این آیات آیات کتاب الله است و هم چنین آیات قرآن مبین هست بعضی می گویند کتاب و قرآن یک چیز است، اما بعضی می گویند تلک آیات الكتاب کتب سابق کتاب های گذشته و قرآن مبین این کتاب. یعنی مزامین انها و مزامین قرآن یکی هست. قال مجاهد والقتاده الكتاب هنا ما نزله من الكتب قبل روح کتاب اون چیزی که نازل شده قبل از قرآن. لذا تیلک آیات الكتاب این آیات آیات قرآن کتابهای گذاشته هست و قرآن هست. ربما يود الذين كفروا لو كانوا يعلموا لو كانوا مسلمين ربما هم براية ربا هم براية تقليل مياد هم براية تكسير مياد ربا يعني كمكي ربا يعني خيلي هردو بهردو معنا مياد از قرینه معلوم میشه که معناه تقلیل است یا تکثیر است. اینجا به معناه تفسیر است. یعنی خیلی دوست داشتند چه بسا دوست داشتند کسانی که کفر کردند خیلی دوست دارند و چه بسا دوست خواهند داشت که کاش در دنیا مسلمان بودند. و مسلمین مسلمین می‌نیسی در دنیا. یعنی کوفار دوست می‌دارند در آخرت کاش در دنیا چیکار می‌کردند؟ اسلام می آوردند در دنیا تسلیم می شدند اما الان که در دنیا هستند الان تسلیم نمیشن الان تمرد میکنند الله می فرماید زاروفم یاکلوا اینها را در دنیا بخورند و یتمتعوا بهر بگیرند و یلههم انها اینها را غافل کرده آرزوها آرزو به زندگی دارند، تمنا دارند، امید دارند، فسوف يعلمون ان قریب می دانند، وقتی که عذاب خدا بی آید، وقتی که گرفتاری بی آید، انها می دانند. وما اهلکنا من قهیت إلا ولها کتاب معلوم، اللہ می فرماتے هیچ قریے را ما ہلاک نکردیم الان خداوند که می فرماید ان قری میداند سوال اینه که کی مگه عذابشون میآید اللہ می فرماید هیچ قریے را ما ہلاک نکردیم مگر وقتش معلوم بود پیش خدا و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم هیچ قریه‌ای را ما از بین نبردیم مگر مدتش مشخص لذا ام مدتی که فرا برسد الله عز وجل انها را به عذاب گرفتار کند ما تسبق من امت اجلها و ما یتاخرون این بیان سنت الله است بیان عادت الله که الله می فرماید هیچ امتی از اون اجل و موعد خودش پیشی نمی گیرد و ما تاخیرون تاخیرم نمیشه یعنی مدتی که خدا تعالی برای عذاب تعیین کرده به اندازه سر سوزن نه تقدم میشه نه تاخیر میشه نه جلوتر میشه و نه عقب میشه سر وقت که بی آید الله تعالی گرفتار میکنه الله نجات بده اما ببینید این آیات بجای اینکه تکان بده مشرکین را بجای اینکه قومی را که خدا واغن گمراهش بکنه هر آیه برایش اش بیاید این آیه بجای اینکه عبرتی باشه باعث مسخره میشه آنها بر رسول الله را مسخره میکردند چی میگفتند وقالو یا ایها الذین نزل علیه الذکر میگفتن ای کسی که بر او قرآن نازل شده بر او ذکر نازل شده میگفتن انک مجنون تو دیوانه ای علی اذن الله رسول الله میگفتن دیوانه ای این چه ادعایی داری میکنی اگر راست میگی چرا فرشتگان با تو نمیایند لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين چرا بر ما ملائکرا نمیاری فرشته ها نمیاری اگر راست میگی راست میگی فرشته را بیار تمام ببینیم واقعا اون تایید بکنه الله و وجل جواب میده میگه ای انسان های نادان فرشته کی بیاد دیگه کار تمامه ما ننزل الملائکه الا بالحق ما ملائکه نازل نمی مگر به حق نازل می کنیم بالحق حق اینجا به فیصله است یعنی فرشته کی بیات فیصله میشه فرشته کی کی بیات فاتحه تو خونده هست. فرشته کی بیات دیگه تمام عذاب دیگه دیگه مهلتی برای شما نیست الله می فرماید و ما تنزل الملائکه الا بالحق ما نمی فرستیم نازل نمی کنیم ملاکر مجب بحق فی سلمی کنیم و ما کانو اذن منظرین وقتی که فرشته بیاد اینها درون هنگام مهلت داده شده نمی شوند مهلت داده شده نیستند مهلت داده نمی شوند دیگه تمامه فرسته کی بیاد برای عذاب میاد دیگه این نحن نزلنا ذکر و اینا له لحافظون بعد از این خداوند ترغیب میده به سوی قرآن ترغیب میده به سوی قرآن الله میفرمای این قرآن را این پند را این نصیحت را ما نازل کردیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و ما حافظ این هستیم ما از این قرآن محافظت میکنیم ببینید خدای عزوجل مسئولیت حفظ قرآن را خودش میعوده گرفته که نگذارد تا قیامت کسی در این کلام زیبا تحریف کند هیچ کسی نمیتونه این کفار همیشون دلشون میخواهد که قرآن را مقدار تغییر بدهند. تعلیمات قرآن را هر سال میشنویم امریکا میگه که قرآن باید مقداری مطالبش حصف بشه مطالبی که در جهاد هست درباره شهادت هست در مبارزه با کفار هست همین آیات قرآن خواب را از سر اونها پرنده اونها را بی آرام کرده اونها میدونند که این مسلمانان مجاهدی که انگونه جانان می جنگند و شربت شهادت می نوشند اینها به برکت تربیت قرآنی هست قران تربیتشون کرده لذا میخاند که قرآن آیاتش را جا بجا بکنند اما الله وقتی که حفاظت کرده و حفاظت را به عهده گرفته این قرآن تا قیامت تغییر نمیکند ان شاء اما بقیه کتاب ها بقیه کتاب ها خود الله در قرآن فرموده که بقیه کتابها مسئولیت حفظ به علما اون امت ها داده شد به مستحفظو من کتاب الله اونها چیکار شدند مسئولیت حفظ کتاب خدا داده شد به اونها اونها ام به خاطر منافع خودشون به خاطر نفس خودشون خودشون تغییر دادند به همین خاطر امروز شما اگر نگاه بکنید های آسمانی گذشته خیلی تغییر کرده حتی در دست خود همون یهود و نصارا این جمله را چند بار من تکرار کردم که یک نسخه ای نیست اونها خودشون سرگردانند مثلا نسخه های معروف انجیل 4 تا هستند 4 نسخه معروف در انجیل که یکی نسخه یقنا میگن یکی متا میگن یکی فلان هر یک نسخهی هست که منصوب به یکی هست فلانی جماوری کرده که مسئولیت جماوری و مسئولیت حفاظت از انجیل از تورات به احده اونها بود اونها الان هیچ معلوم نیست که اصلیش کدومه چنان با هم دیگه اختلاف دارن چنان تغییر دارن که از هم دیگه جدا هست. اما قرآن قبلن هم خدمتش ما گفتم تمام دنیا قرآن یکی هست دورترین نقطه شرق را با دورترین نقطه غرب با دورترین نقطه شمال و جنوب شما مقایسه بکن بیار مسلمانان را ببین یک قرآن دستشون هست اصلا با هم دیگه فرق ندارد پس این در واقع دلیل حفظ ماندن قرآن است که خداوند از خودش مسئولیت گرفته حالا سوال اینجاست برای شما هم شاید این سوال میشه اینم کتاب خدا، اونام کتاب خدا چرا خدا این حفاظت کرد،, حفاظت کرد اونا را حفاظت نکرد اونا دسخه تحریف شدند به دلیل اینکه هر کتابی که خدا نازل کرد قبل از قرآن نزولش موقتی بوده، مقتئی بوده. زمانی بوده برای یک زمان خاص انجیل برای مثلا چند قرن چند سال تورات برای چند قرن چند سال بعدن یک کتاب دیگری بجاش می آمده کتابهای گذاشتم چنین اما قرآن کتابی هست که چون بعد از رسول الله صلی علیه و وسلم دیگه پیامبری نخواهد آمد دیگه کتابی هم نخواهد آمد، این کتاب کامل ترین جامع ترین توری نازل شده که انسان هایی که تا قیامت آیند اون انسان ها بتوانند از قرآن استفاده بکنند قرآن برای اونها برنامه داره برنامه زندگی داره وقتی که تا قیامت قرآن هست لذا تا قیامت اللہ عز و خودش مسئولیتش رب اهده گرفته این دلیل الله می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون همانا ما نازل کردی من قرآن را وما ایم که از این قرآن محافظت میکنیم. و لقد ارسلنا من قبل فی شیع الاولین همانا ما فرستادیم قبل سمار در جماعت های اولین در میان اونها هم پیامبر فرستادیم وما یعطیهم من رسول هیچ رسول پیشانا نمی آمد الا کانو بهی استهزئون. مگر انها اون رسول را اون پیامبر را مسخر می کردن کذالک نسلکوهو فی قلوب المجرمین الله می فرمد این گونه ما داخل می کنیم در دل دلهای مجرمین چرا داخل می کنیم؟ استهزار مسخر را چرا داخل می کنیم استهزارا. یعنی اونها م... که مسخره میکنن خدا در دلشون داده مسخره میکنن لا یؤمنون به انها به این به سبب همین مسخره محروم میشی از ایمان ایمان نمی آورن به این و قد خلت سنت الاولین همانا گذشته روش پیشینیان روش پیشینیان چیه یعنی روش خدا در پیشینیان گذشته که وقتی که انها ایمان نمی آورا مسخره می کنند خدا عذابشون میده. خدا عذابشون میده. اینها را هم خدا تعالی می فرماید که من عذاب می دم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ببینید مشرکین از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سری تغازہای مطرح می کردند خاستہای مطرح می کردند که فلان خاسته را ما می خواہیم. الله عز وجل در این آیه میفرماید که ای پیامبر من اگر مادر را در آسمان باز بکنیم و اینها بتونند ببینند و خودشون از همون در برن به آسمان پرواز بکنند یعنی این کرامت و این معجزه را به نشون بدی بعض هم میگویند که تو ما را جادو کردی تو چشم های مرا بستي لذا می فرماید ولو فتحنا عليهم بابا من السماء اگر ما بوک بر آنها دری از آسمان فظلوا فيه يعرجون بیگردان در آن عروج کنم برم بارا چی می گویند لقالوا انما سكرت ابصارنا میگویند جز جزی نیست که های ما بسته شد یعنی ما چشم بند شدیم چشم بند نوی سهر است که اونجا جادوگر اثرش را بر چشم میگذارد مثلا چوب را مار میبیند حقیقتا او مار نیست چوبه ولی چشم او را چنان اثری انداخته بش که چوب را چی میبیند مار میبیند بل نحن قوم مسحورون از این فراتر میره نه بلکه ما یک قومی چی هستیم مسحورون یعنی جادو شده بر ما جادو شده از کنم که فرق چشمبند و فرق جادو چیه از اینجا معلوم میشه که چشمبند یک چیزی هست جادو از اون بالاتر است علماء نوشتند که چشم بند اونه که جادوگر اثراتی بر چشم طرف میگذاره اثرات سوء جادوگر فقط کجاست؟ بر چشم است و بس اما جادو اونه که اثرات بر عقل است فرقش متوجه شدید چشم بند اینه که فنوفوتی میخوانه هرچی میخوانه اثرش بر چشم بیننده او از نظر چشم این سفید را سیاه بینه. از کنم که این ساکن را متحرک میبینه اما جادو اینه که کلن بر عقلش اثر میاندازه و عقلش هر چی که او بخواد بلاخره همه عقلش را از دست میده و وقتی که عقلش از دست بده هر چیز ممکنی برایش هست که ببیند لذا بل نحن قوم مسحورون يعني انتقالا إلى درجة عزمة من سحر, من سحر العقل أول سحر چشمود الآن سحر چشد عقل شد ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظري الآن الله عز وجل دليل عقلي بيان من فرمات دليل عقلي تفصيلي الله من فرمات همانا ما قرار داديم در آسمان بروجه بروج قبلا خواندم که درباره بروج اختلاف است بعضی میگویند برج اون جاهایی را میگویند اون محلاتی را میگویند که محلات قرار گرفتن خورشید است خورشید هر سی روزی در یک برج قرار گیرد به همین خاطر حساب ماه ماه حساب برج ما از همون شروع میشه پس این منازل چی هستن منازل شمس را برج میگویند یک قول همینه منازل شمس را منازل خورشید را برج میگویند قول دوم اینه که بروج یعنی الکواکب العظام ستاره های بزرگ را چی میگویند برج میگویند الله میفرماید اینجا همین معلوم میشه چون وزینها للناظرین اون ناظر خورشید را که ما نمیبینیم اما ستاره ها را میبینیم ولقد جعلنا في السماء بروجا همانا ما قرار دادیم در آسمان ها برج های ستاره های بسیار بزرگی وزینها للناظرین و ما آراست کردیم زیبا کردیم انهارا برای تماشا کنندگان و حفظناها و اون آسمان را ما حفاظت کردیم من کل شیطان رجیم از هر شیطان رانده شده الا من استرق سمع مگر کسی که دزدکی گوش کند استراق سمع بکند قبلاً این موضوع را خاندیم تفصیلش را خاندیم که چگونه بعداً از ستاره جرقی میشه و این را میزنه، فا اتباعش شهاب مبین دنبال می کند این شیطان را شهاب مبینی شهاب یعنی اون جرقه آشکاری آتشی که این را دنبال میکنه میزنه این را میسوزاند. ول ارض دماد نه و زمین را ماتی کردی ما کشیدیم. ببینید زمین با وجودی که کره هست توپ مانند هست ولی خدای عزواجل زمین را فرش کرده ما انسان ها که روی زمین زندگی میکنیم اون کراویتش را اون توپ بودنش را احساس نمیکنیم چرا از بس که چیه زمین وسیع است. این به دلیل وسعتش هست الان ببین خدای عزواجل چه صانعاتی بیکار برده، چه خلاقیتی بیکار برده، که زمین باوجودی که توپ مانند است، اما ما روی زمین چی هستیم احساس نمی کنیم، برای ما صاف و فرشه، تا که چشمت کار میکنه، زمین چیه؟ صاف و هموار است. هیچ کرویتی شما احساس نمی کنیم، چون خیلی عظیم است. لذا والأرض مددناها وزمين را ما کشیدیم وألقینا فيها رواسی وما انداختم در اون زمین كوهای را انداختم وانبتنا فيها من كل شيء موزون وما رویاندیم در اون زمین من كل شيء موزون هر چیزی بانداز معین هر چیزی سبحان الله قرار داده هر چیزی را موزون قرار داده به حد و اندازه قرار داده میوه حدش اندازش مشخصه حکمتی هم توش هست یک لطیفهی بیان می کنند داستانی بیان می کنند حقیقتش را خدا می دوند ولی خب انسان از همین داستان میفهمد که در هر کاری حکمتی هست میگویند که یک کومونیستی یک منکر خدا یک منکر خدا آمد یک جای دید که یک به کشتی هست کشت هندوانه, هندوانه هست هندوانه های بزرگ ده کیلو 15 کیلو اینا روی زمین هست شما دیدید بوته اندوانه را خیلی ضعیف هست که بچه با دستش میتونه اون را چی بکنه؟ قطع بکنه و اینجا یک درخت بود درخت انبه بود این درخت امبه درخت امبه اگه شما دیدید خیلی بزرگه درخت های انبه هم خیلی کلوفتن تنیشون هم بلند میشه و هم شاخش زیاد یک منطقه بزرگی را تحت پوشش قرار میده این همون سایه درخت امبه نشست و گفت که میگویند که خدا عدالت کرده چه عدالتی هست این بوته را نگاه کن چقدر ضعیفه یک هندوانه بیسکویلو بهش داده و این انبه را نگاه کن چقدر درختش بزرگ انبه کوچیکی بهش داده این چه عدالتی هست میگه همینطور که نشسته بود انبه افتاد به سرش خورد گفت ها علا حکمت را فهمیدم اگر به جای انبه اندوانه به سرم میخورد دیگه اون وقت ملح میشدم منظور اینه که الله عزوجل همونطور که میفرمد و انبت نافیها من كل شئین موزون هر چیزی را الله تعالی مقدار معینی که حکمت و مصلحت ایجاد میکنه الله قرار داده وجعلنا لكم فيها معایش قرار دادیم برای شما در این زمین معایش معایش یعنی اسباب زندگی اسباب عیش یعنی معکولات و مشروبات و ملبوسات و هم خوراکی هم نوشیدنی هم لباس همه از همینها گرفته میشه و لستم له برازقین و اونها ایک شما رازقی اونها نیستید رازقی اونها هم خدا هستن هم رزق شما را هم رزق اونها را خدا قرار داده یعنی رزق شما باقی انسان ها رزق شما و حیوانات حیوانات را که و الف میدی تو میدی ولی نه تو نمیده خدا میده خدا رویانده و این من شیئن الا عندنا خزائنو اللہ میفرماید هیچ چیزی نیست مگر نزد ما خزانهش هست نزد ما خزانه تمام اون چیزی که در زمین الان ببینید، اهل زمین اهل زمین میگویند که سروت و سرمایه های زمین کفاف نمی کنه برای آینده مثلا نفت شاید جوابگو نباشد گاز شاید جوابگو نباشد. سرمایه های اصلی اینها هستند که اقتصاد کشورها بر اینها میچرخند لذا بعضی دستپاچه هستم میگویند که اگر جمعیت زمین بیشتر بشه در آینده شاید با مشکل مواجه بشیم آب کمبود باشه الله بهتر میدانه الله خیلی چیزای دیگه برای ما ذخیره کرده هنوز ما نمیدونیم هنوز ما نمی دونیم و این من شئین الا عندنا خزائنه هیچ چیزی نیست مگر خزانش نزد ما هست الله تعالی به مرور زمان بنابرا نیاز بندگان اونها چکار میکنه روز بروز بیشتر میکنه بنده قبلا خدمت شما گفتم بعضی از دانشمندان غیر مسلمان سیصد سال پیش پیش بینی کردن گفتن که با توجه به جمعیتی که دار زیاد میشه 300 سال پیش جمعیت امروزی که ما داریم هشت میلیارد شاید نصف این نبوده اون زمان دانشمندان گفتند که هر چی که در دنیا هست تا سی سال دیگه کفاف میکنه سی سال بعد تمام مردم از گروسترگی میمیرند ولی الان 300 سال گذشته مردم بیشتر دارم میخورند مردم چنان میخورند که اون زمان مردم در خوابشون ندیدنی این خوراکی های که امروز هست هر چی که میگذارد خدای عزواجل دیگه چیزهای کشف میکند خدا میدونه در آینده میگویند آب کم است و در آینده جنگ بین کشورها جنگ برای آب خواهد بود و حق خواهد بود تمام کشورها میگن این رودخانه باید اختصاص به کشور من داشته باشه دیگری میگه نه این باز باشه الله بہتر میدونه الله دیگه برای انسان چه بندبستی کرده چه ای داره انسان بی خود پاچه نشه و ام من شیئن الا عندنا خزانه هیچ چیزی نیست مگر نزد ما خزانش هست الله زخیره کرده انسان نترس خدا برایت زخیره کرده و ما ننزله الا بقدر معلوم ما نازل نمیکنی مگر به اندازه معین به اندازهی که خدا معین کرده نیاز انسان هاست همون اندازه مثلا قناعت ما در خشک میشه چاهای ما در خشک میشه الله نازل میکنه همین اندازه که اینها آبشو زیاد بشه زمین ما سبز بشه بهار بشه بس همین اندازه بیشتر از این اگر نازل بکنه بعضی وقتا مردم احساس خطر میکنه زمین کاملا آبش را مکیده سیراب شده و زخائر زیر زمین پر شده بیشتر از اینکه باران بیادی خانه های مارا خراب میکنه لذا الله می فرماید و ما ننزله الا بقدرین معلوم ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه معین به اندازه مشخص به اندازه که نیاز شما برطرف بشه و ارسلنا نریاح لواقح الله می فرماید ما بادها را می فرستیم لواقح یعنی باردار استند باردار هستن به چه معنا که هر بادی که میاد ابری را میاره این ابر پر آبه باردار به همین معنا فأنزلنا من السماء ما نازل میکنیم از آسمان آب نازل میکنیم ف از غی ناک ما به شما آب انتم لهو بخازینین شما نیستت که این راجم کنیم ذخیره کنیمین. ما برای شما زیری زمین میبریم ذخیر میکنیم. اگر انسان به دست خود انسان باشه میتونه ابر ذخیره بکنه. اللہ تعالی در زیر زمین چقدر برای ما امکانات گذاشته که همه این آب میاد دل مو خوشه هیچی نموند چرا دلت خوشه دلت خوشه که زیر زمین میره برای تو زخیره میشه آب چاہی تضافه میشه آب قنات تضافه میشه آب کشاف ارضی میشه اللہ برای تو بندبست کرده تو چکار کردی برای زخیره کردن آب اللہ میفرماید و ها لواقح فانزلنا من السماء ما, ان ما از آسمان آب نازل کردیم فاسقینا کمو ما بشما آب دادیم وما انتم له بخازنین شما زخیر نکردید شما جم نکردید و انا لنحن نحی و نمیت الله می فرماید گونه که نعمت نعمتها ما دادیم همچنین موت و حیات شما بدست دماس إننا نحن نحيي أما نما يمكن زندمكُنِيم ونُميت ما يمكن ميمِرَنِيم ونحن الوارثون ما يمكن وارث هسِيم يعني هميشما إنسانها ميميريد زمین و تمام زخائر زمین برای خدا میماند وارث خداست و علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین همانا ما میدانی مستقدمین راست شما اونهایی که قبل شما گذشتند انسانهای 100 سال پیش 200 سال پیش همین ابا و اجداد خود شما 300 سال پیش 500 سال پیش خدا همی دنگای انسان تصور میکنه پدران ما اون زمان چطور آدمایی بودند اونها را الله می فرمه هم ما می دونیم مستاخرین که ایک سال دیگه دویس سال دیگه 500 سال دیگه میاین نسل و اولاد شما هستند اونها را هم ما می دانیم شما نمی دانید وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ ولقد علمنا المستأخرين همانا هستند هم أنا مميتان أن قبل الشماه استند وهم أنا مستأخرين بعد الشماه ميayan الله ميفرم ماجم ميكنيم در روز قيامت وإن ربك هو يحشرهم همانا رب تو را حشر می کند را جمع می کند در یک میدان انه حکیم و علیم همانا اون ذات حکیم هست کارهاش با حکمت هست و اون ذات هر چیزی را میداند. بعد از این الله عز و جل ذکر می فرماید اینها همه نعمت های پروردگار این نعمت ها ایجاب می کند منو تو خدا را ناراض نکنیم من و تو خدا را نافرمانی نکنیم و من و شما اطاعت کنیم عبادت کنیم سرپیچی نکنیم از فرمان او اما بعد از این الله تعالی یک دشمنی را ن... معرفی میکند میگه این شما را نمیذارد شیطان ابلیس لذا معذب باشید از این برحذر باشید از این بدور باشید این دشمن اون دشمنی هست که وقتی شما را آفریدم وقتی شما را خلق کردم این دشمن شما را سجده نکرد این دشمن برای شما احترام قائل نشد الان شما چرا احترام قائل میشه حرفش را گوش میکنید همونطور که اون برای شما احترام قائل نشد شما هم لعنتش کن نفرینش کن از او فاصله بگیر از او دوری کن لذا این جا بیان پیدائش آدم است که شما چند جا خاندید اما امروز این نکتر او یاد آوری بکنم که یک داستان را که خدا عز و جل بار بیان می کافی هست ولی چند بار این ذکر می شے چند بار ذکر کردن و تکرار کردن این فایده ای داره این حکمتی داره این علت داره اون حکمت و علت چیه بار بار تذکر بار بار که ای انسان همیش به ذهنت باشه بیادت باشه دشمنت کیه اونی که تو را در دنیا هم حلاک بشی و بدبخت بشی و در آخرت هم به عذاب همیشگی گرفتار بشی اون کیه بار بار تذکر میده ببین یک جایی که خطری باشد برادر شما فرزند شما به سفر میره شما یاد آوانی میکنی میگه با برادر بابا متوجه باش فرا اونجا خطر است اونجا خوب احتیاط بکنی خب یک بار گفتی بار دوم دو هم میگی بار سوم سو هم میگی وقتی خداحافظی میکنی دوباره میگی خب یکی کافی برای علم اما برای تذکر یک بار کافی نیست سه بار بگو چهار بار بگو پنج بار بگو تا فراموش نکنت این هم خدای تعالی بار بعد داستانه. آدم و ابلیس را میاره تا من شما فراموش نکنیم در ذهن ما حق بشه که این دشمن است از این دوری کنیم از این فاصله بگیریم الله می فرماید ولا قد خلقنا الانسان همانا ما انسان را افریدیم من سالن از گل خشک سال همون گل را گویند که شما لگاتش میکنی صدا میده اون گل خشک وقتی که بالخصوص زمین ملک باشه مل باشه به اصطلاح باران بیاد این زمین ایک مقدار برامده میشه بعد که خشک میشه شما روش را میریم مثل سفاد میشکنه و ترق ترق صدا میده لذا اون را میگه سال خب سوال اینجاست که خدا تعالی از چی ما را آفرید یک جایی میفرمای از خاک یک جایی میفرمای از سال از این گل خشک یک جای می فرماید از گل بدبودار از گل سیاه من همه این مسلون همین جام هم فرموده اینا با هم تعرض نیست مراحل مختلفه اول خاک با این خاک چه آب غاتی شد آب که غاتی شد شد چی شد گل شد بعد که گل مدتی گذشت زمان گذشت این گل سیاه میشه وقتی زیاد تو آب بمانه گل سیاه میشه بدبو میشه من همه این مسنون یعنی گل متعفن و بدبوده روسیان بعد وقتی که مرحله سوم آب آخر خشک میشه گل هم خشک میشه این گل جنان خوشک میشه که لگتش بکنی صدا میده میشه سال کلفخار مثل سفال میشه لذا الله تعالی همه مراحل رزق کرده وَلَقَدْ خلقنا الْإِنسَان همان آماء انسان را خلق کردیم من صلصال از گل خوش من همه این مسنون که اون گل خوش درست شد از همه از گل مسنون بدبودار گلی که تعفون گرفته والجان نخلقنا جن را ما آفریدی من قبل قبل از انسان من نار از آتش سوزان آتش سوزان نار سموم اون آتشی را میگویند اون شوله آتش را میگن که توش دود نباشد جن را تا تعالی از همون بخش آتش آفرید و اذ قال ربک للملائکه این اکرام آدم ببین شما را خدا آفرید چه عزتی داد معلوم میشه که ببینید شیطان تکبرش این بود که من از آتشم این از گله خب آتش از گل بهتره خدا میدونه کدوم بهتره اگر آتش از گل بهتر بود به انسان میگفت شیطان را سجده کنید جن را سجده کن ولی برعکس نمی معلوم میشه که با این اسالت نیست ارزش با اسالت نیست کسی بگه من فلان قوم هستم من برترم نه به خاطر قوم تو برتر نمیشه هیچ وقت به خاطر اینکه عرب باشی بهتر نیستی به خاطر اینکه از اولاد حتی 사ادات و پیامبر باشی عسل برتری با تقوا است با ایمان است لذا الله می فرماید که فاذا سویته ونفخته والجان خلقناه والجان خلقناه جن رما افريد من قبل قبل الانسان من نار السموم از آتش سوزان و اذ قال ربك للملائكه زمانی که ربت به دستور داد اینی خالقم بشرا ای ملائک ای من من بشری رامی آفرینم من سلصال، من حمئی مسنون از گل خشک و از سلسال گل خشک و همچنین گل بدبو اما این را که آفریدم شما چکار کنید فا سویته. وقتی که من اعزائش را برابر کردم ونفخت فيهم من روحي ودر او دمیدم اون روحي که مال من است يعني چه مال من است اینجا ان اضافت اضافت تخلیق است يعني روح را من خلق كردم روح را من خلق كردم روح از جانب الله است حقیقتش را الله بہتر میداند يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي فقعو له ساجدين همه شما برای انسان سجد کنان بیفتید او را سجد کنید فسجد الملائکتو کلهم اجمعون سجد کردن ملائک همگی. همگی اجمعون سجد کردن هم باهم سجد کردن هیچ کسی باقی نماند الا ابلیس مگر ابلیس سجد نکرد ابا ایکونم از ساجدین انکار کرد اینکه از ساجدین باشد از سجد کنندگان باشد انکار کرد گفت نه من نمی کنم قال یا ابلیس ما لکا اللہ تکونم از ساجدین ای ابلیس چی شد شکترہ که نشدی از سجد کنندگان اما ببین تکبر الله اس تکبر نجات بده اون چی گفت؟ قالا لم اکن ل اسجد ل اون به اصالت نگاه کرد. هر کسی به اسالت نگاه بکنه گمراب میشه. لم اکن ل اسجد بشرین نیست من که سجد بکنم برای هیچ بشری که خلقته من صلصال اون را آفری دی از قل خوش من همه مسنون وبعد گل بدبودار بس تکبر تکبر و بعد از گله بدبدار پس تکبر کرد. تکبر کرد. الله الزواجل تکبر را تحمل نمیکنه. ذات متکبر الله الزواجل است. قال فخرج منها گفت بیرون شو از اینجا فن رجیم تو رانده شده هستی. تو مردود رانده شده هستی. برو از اینجا بیرون از کجا برو بیرون قبلن خاندیم. بعضی میگن از بهشت. بعضی میگن نه تو بهشت نبود. تو آسمانها بود. از آسمانها برز بیرون برز زمین. دیگه حق نداری آسمان بیایی. و این علیک اللعنت الیوم الدین همانا بر تو لعنت و نفرین هز یعنی دوری از رحمت اللہ الیوم الدین تا روز جزا تا روز جزا لعنت خدا بر تو. قال رب فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ اُبْعَثُونَ گفت اے رب من مرا بده تا روزی که همه بلند کرده میشه من از قبرها یعنی <تصفح> تا روز قیامت تا روزی حشر به من مهلت بده که من کار خودم را بکنم که این انسان بخاطر این انسان مرا ران دی من از این انتقام بگیرم اللہ فَالْمُقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ خدا. همانا تو از مهلت داده و هستی اما نتا قیامت الیوم الوقت المعلوم تا روزی که وقتش معلوم پیش خدا خدا می دونه می که شیطان تا که زنده هست تا نفخه اوله. تا روزی که دنیا هست اون زنده است. وقتی که سور اول دمیده می شه نفخه اول زده میشه همه انسان هم می میره شیطان هم می میره شیطان هدفش این بود که نمیرد مرگ او نیاید اما خدا این را قبول نکرد الیوم الوقت المعلوم فرمود بعض شیطان چی گفت قال رب بما اغویتنی ای رب بسبب آنچه که مرا گمرا کردی لا لأزینن لهم في الارض حتما حتما من معاصی را مزین میکنن برای آنها در زمین گناہ را برایشون آراسته می کنه مزین می کنه یعنی گنا انجام میده لذت میبره از گنا از گنا چی لذت میبره اینطور هست امروز مردم دنیا گنا می کنن گناه خودشون را کلیپ درست می کنن که فلانی این شاهکار را میکنه فلانی بطری شراب به دست گرفته العیاذ بالله فلانی دود میکشه هر یکی هر گناهی میکنه هر معصیتی میکنه زنها بی حجابی میکنن بی خودشون را کلیپ میگیرند و به نمایش میگذارند هر گناهی که انسان میکنه به او افتخار میکنه از اون مجلس گناه از اون مجلس اورگ از اون مجلس رقص از اون مجلس بی بندوباری بی حجابی می میگیره و گاهی نه را نگاه میکنه لذت می بره این درس شیطانه انسان باید از گناه خجالت بکشه باید از گناه تنفر داشته باشه ولی به عذاب خدا فکر نمیکنه لذا شیطان همین میگه لعوزینا نلهم فلارض البته حتما حتما مزین میکنم برای آنها معاصیرا در زمین و الاغینهم اجمعین البته همگیر من گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان تو از آنان اون بندگانی که برگزیده شده اند قال هذا صراط علی مستقیم الله فرمود این راست این راه راست راه را ای ایمان راه توحید راہ عبادت رایی هست که مستقیم بر من میآید به بسوی من بنده می آید سراطون علیه مستقیم رایی هست بر من راست هست بندگان خاص من بندگانی که بر صراط مستقیم باشند تو شیطان بر اونها هیچ نو تسلطی نداری این عبادی لیس لک علیهم سلطان همانا بندگان من نیس بر تو بر انها هیچ نو تسلطی ہیچ رو قدرتی بر اونها نداری إلا من التبعك من الغافين مگر اون انسانی که تو را پیروی کند از گمران هر کسی گمراه بشه تو را دنبال بکند او را می‌بری اما بندگان مخلص من بندگان با ایمان من را نمی‌تونی فریب بدی و بعد الله تعالی می‌فرماید اونهایی که دنبال تو بیایند تکلیف اونها را هم اعلام میکنم و ان جهنم لموعدهم اجمعین همان جهنم موعد همه همی گیه آنهاست یعنی محل وعده همه جهنم است همه گناهکاران همه پیروان تو همه کسانی که از تو تقلید و تبعیت بکنند جایشون جهنم است اما الله نجات بده از جهنم الله میفرمايت لها سبعه ابواب جهنم هفت در داره سبحان الله هفت در داره چطور هفت در داره الله بهتر میدانه اما مفسرین نوشتن هر درش به یک طبقه است جهنم طبقه به طبقه معلوم میشه چنانچه الله فرمود شما خاندی دی آیره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اما پایین ترین طبقه جهنم اونجا منافقین هستن یعنی باید چقدر زیر زمین بری از تحخان درش باز میشه اونجا چقدر خطرناکه چقدر وحشتناکه لذا هر دری از جهنم به یک طبقی از جهنم باز میشه لها سبعت و ابواب برای آن هفت درست لکل بابی منهم جزء مقصوم برای هر دری از اون جهنم یک بخشی هست که تقسیم شده است یعنی اون در به بخشی از جهنم اختصاص داره تقسیم شده این در مال فلان قسمت جهنم این در مال فلان قسمت جهنم اونجا باز جهنم قسمت قسمت جا جا هست هر قسمتش از قسمت قبلی بدتر است و خطرناکتر است الله عزوجل به لطفش به فضلش به احسانش ما را از جهنم دور بگرداند و اصلا نزدیک جهنم ما را نبرد و خدای تعالی بهشت را رضایت خودش را و توفیق اطاعت و بندگی را که موجب بهشت میشه در دنیا نصیب همه ما و شما بگرداند این المتقین فی جنات و بسلام آمنین وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا وما هم منها ها بمخرجین نبع عبادی انی انال غفور الرحیم وان عذابی هو العذاب در پایان درست گذشته بعد از اینکه جریان پیدایش آدم و عبا و انکار سجده ابلیس را خاندیم اینو هم خاندیم که ابلیس تحدید کرد تحدید برای گمراه کردن انسان و بیراه کشیدن انسان و بعد از اون وعید الهی تخویف الهی که شما هر کسی که پیروف ابلیس باشد و دنبال تو ای ابلیس هر کسی دنبال تو بی, بی آید جای شما حمیقان در جهنم هست اما بعد از اون تخویف بشارت می خانیم که این آیات امروزی در رابطه با بشارت هستند مجده هستند خوشخبری هستند در مقابل اون تخویف کسانی که اهل ایمان باشند اهل تقوی باشند از شرک و کفر و معاصی دوری کنند برای اونها بشارت از جایشون بهشت است اللهمی فرماید ان المتقین فی جنات و عیون همانا متقیان الذين یتقون الشرك والكفر والمعاصی متقیان در باغات و در ششمزارها هستند انجا که برانت به انها میشه لهم ادخلوها بسلام آمنین داخل این بهشت بشید بسلامین همرا با سلامتی و آمینین همرا با امنیت بسلامین یعنی فی الحال و آمینین فی الاستقبال معنی اینه که الان هم خطری برای شما نیست در آینده هم هیچ خطری برای شما وجود ندارد و چنان در بهشت برای اونها خوش میگذارد که حتی کوچکترین کدورتی رنجشی با هم نخواهند داشت و اگر در دنیا مومنین با هم دیگه رنجشی داشتند دلگرفتگی داشتند اونجا تبدیل به محبت خواهد شد الله می فرمد و نزعنا ما فی صدورهم من غل اون خفگی اون از کدام کرد کدورت و رنجش قلبی که از قبل با هم دارن نزعنا ما فی صدورهم ما در میاریم اون چیزی که در سینه هایشان هست من غل از رنجش اخوانان در حالی که با هم برادر خواهند بود على سرور متقابلین بر تخت های هم روبرو همدیگر صحبت می کنند با هم روبرو می و با هم جلسه دارند لا یمسهم از نصب در آن بهشت به اونها هیچ نوع خستگی و رنجشی نمی رسد و ما هم منها به مخرجین و آنان از آن بهشت اخراج کرده نمیشوند بیرون کرده نمیشوند. شوند اینه که از هر جهت خوش می گذارد. از هر جهت برای آنان خوب خواهد بود راحت خواهند بود، با هم دیگه محبت، الفت، هموار جلسات والله عز وجل برای این وعده که این وعده محقق بشه تاکید می فرماید نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم همه بهشت و ان نعمتها و ان روح و ریحان و راحهتی برای به من خبر بده که اني انا الغفور الرحيم من رب من هم بخشاینده هستم و مهربان وقتی که طرف حساب شما ذاتی باشد دارای این خصائص این شرائط پس مسلمه که جای شما جای راحتی جای آرامی خواهد بود و ان عذابی هو العذاب الالیم این تاکید تا اون وعید هست که قبلا شما خواندید که و ان جهنم لموعدهم اجمعین اونجا وعید بیان فرمو تقویف همانا عذاب من عذاب دردناکی خواهد بود هر کسی اگر مخالفت بکند و در با عذاب ما رو برو بشه وقت عذاب هم دردناک خواهد بود به این راحتی نخواهد بود خب بعد از این الله عز و جل نمونه استخوی فی الدنیاوی بیان می فرمد و نبعهم ام ضیف ابراهیم از این جا به بعد تا پایان رکوع بعد جریان حضرت لوت هست و قوم لوت و اینکه که عذاب چگونه برای انها آمد این نمونه از عذاب دنیا است خداوند تعالی وقتی که مخالفان را مؤاخذه بکند نه تنها در جهنم هست در آخرت است در دنیا هم برای انها ای هست گاهی فیصله مؤاخذه و فیصله عذاب میشه پس مجرمان چون اعتقادی به آخرت نداشتند مشرکان مجرمان خداوند تعالی می فرماید و از اون در دنیا هم هست و می خواهید بدونید که در دنیا به چه صورته و نبیه هم به انها خبر بده از مهمانان ابراهیم خب این جریان یعنی مهمانان ابراهیم که اول مهمان ابراهیم شدند و بعدا آمدن مهمان لود شدند یعنی همون فرشتگان به شکل انسان اینا را ما قبلا به تفصیل خواندیم هم در سوره هود خاندیم هم در سوره دیگه خانم که اینها به شکل انسان آمدند و ایچیک از این پیام بران نه سیدنا ابراهیم متوجه شد اینها فرشته هستند نه سیدنا لوت متوجه شد و اینها آمدند به لباس مبدل و شکل مبدلی و در واقع برای ابراهیم پیام آور مجده و بشارت بودند و برای قوم لوت با خودشون عذاب آورده بودند الله اللہ تعالی در این سوره مبارکه با ادبیاتی مناسب با این سوره این جریان را تعریف کرده ونبئهم عن ضیف ابراهیم به آنان خبر بده از مهمان ابراهیم اذ دخلوا عليه فقالوا سلام زمانی که بر او داخل شدن سلام گفتند بعد از سلام و بعد از غذا نخوردن اینجا اجمال است قال انا منكم وجلور من ما از ما مترسيم از شما شما غذا نمیخورید چه خبره قالوا لا توجل گفتن شما نترسید انا نبشرك بغلام علیم هم ما تورا مجده میدهیم ما برای خوش خبر تو آمدیم به پسرکی دانا خداوند به بش شما پسری میده هم هم پسری هست و هم دانا هست قالوا بشرناك بالحق ما مجدمی دین بحق يعني واقعیت است فلا تکن من القانطين تو از قانطین و افراد نا امید قال ومن یقنت من رحمت ربه إلا الضالون جه کسی نا امید از رحمت ربه نمیشه کسی دیگه مجب کسی گمراه بشه کسی که مؤمن باشد و برمسیر حدایت باشد او همیشه امیدوار است قال فما خ بکو یحل احساس کردند که اینها چند نفر اصلا برای بشارتی همه که آمدن معموریت دیگری دارن تعدادشون زیاد جماعتی هستن گرچه قبلا ث کردم قال ابشر تمی على صنییل الكبر گفتند که آیا شما به من به من خوشخبری میدید با وجودی به من پیری رسیده یاری یعنی باوجود پیری باوجود کهولت فبیمت تو بشرون به چه چی چیزی میخواد بشارت بدید اونا گفتم بشرناک بل حق بحق واقیته و خلاف نیست تو هم نامید نباش پیر باشی خداونتی عزوجل در هر حال میده این از کمال قدرت رب هست که شرائط را الله تعالی نگاه نمی کند اسباب را نمی بیند بدون اسباب می ده ایه حالا ارز کردم بعضی گفتن که سه نفر بودن بعضی گفتن که بیشتر از سه نفر بعضی نه نفر حتی گفتند لذا قال فما خط بکم ایوه المرسلون ای فرستاد شلگان ای فرشتگان ما خط بکم یعنی ما شأنو کم کار دیگری شما وظیفه دیگری شما و ماموریت دیگری شما چیه؟ قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمين آنان گفتم ما فرستاده شدیم به سوی مجرم قوم مجرم قومی قوم که مرتکب جرایم هست همیشه جرائم پیشه است برای عذاب اونها داریم میریم الا آل لوط مگر آل لوط این خاندان پاک که خاندان نبوت هست با انها کار نداریم انا لمنجوهم اجمعین ایلا امرأتهو ما همه را نجات میدیم خاندانش را اهل بیتش را مگر همسرش نه قدرناها قدرنا برای همسرش ما مقدر کردیم ما نوشتیم و در تقدیر او گزاشتیم که انها لمنالغابرین همان او هم از غابرین هست از کسانی که میمانت اونجا در روستا و در شهر میماند و برای او عذاب هست علی ایحال بعد از اینکه از پیش ابراهیم رفتن اونجا پیش لوط علیه سلام ایشون هم تو دلش گفت که شما آشنا هستید شما کی باشید اونها خودشون را بعداً معرفی کردند گرچه ونشي كه بعدن هست اینجا تقدیم و تاخیر شده فلم آل المرسلون زمانی که پیش آل لوط عامدا مرسلون آمدن فرستاده شدگان آمدن قال إنكم قوم منكرون شما قوم هستید من شما را نمی‌شناسم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ای لود بلکه ما آوردیم آن چیزی که آنها دارند شک دارند چی چیزی شک داشتن؟ عذاب یعنی عذاب آوردیم و اتیناک بالحق بحق آوردیم یعنی راستی راستی واقیت و این لصادقون در این سخن و در این خبر صادق هستیم یعنی شوخی هم نداریم و خلاف هم نمیگویم واقیت را داریم میگوییم لذا شما آماده باش اما ده باش باش نيمة شب با اهل و از شهر خارج شو فاصر با بقطع من الليل همرا با اهلت تكي از شبرو نيمة از شبرو واتبع ادبارهم و واتبع ادبارهم پشت سري انهار يعني انهار جلو بفرست و خودت پشت سرشون برو ولا یلتفیت منکم احدون هیچ کسی پشت سر نگاه نکند یعنی قومی که برایشون اذاب عذاب میاد به اون التفاق نکنید به اون توجه نکنید ومضو حیث تؤمرون به هر جایی که شما امر بشید برید ما قبلا خواندیم که شهر قوم لوت در کناره اردن بود نزدیک اردن بود که اون هم جز شام هست به شهر صدوم و اموره میگوین یا اموره به اون سمت راهنمایی شدن که شما از اونجا برید به طرف شام برید به طرف فلسطین برید حیث تقمارون تفسیر سنتین جامعه که اون ملک شام به طرف فلسطین شما برید الله تعالی می فرماید که این در وسط ادخال الهی هسنوز داستان ادامه دارد اللهم می فرماند و قضینا الیه ذالک الامر ما فیصله کرده بودیم این امر را و حکم صادر کرده بودیم که ان دابر هاولئی مقتوع مصبحین ریشه این شهر و این قوم سر سبقت میشه یعنی ریشه شم برکنده میشه داستانشون تمام میشه چراغ زندگیشون خاموش میشه على ای این پایان جر جریان هست آخر داستان هست اما آغاز وقتی که مهمانان آمدند فرشتگان آمدند قوم با خبر شد قوم دوان دوان بدو بدو داشتن می آمدند به طرف خانه لوت وجاء اهلال مدینه یستبشیرون اهل مدینه اهل شهر آمده هم دیگر را خوشخبری می‌دادند. خبر داری امروز سنین افراد مهمان لوت هستند باید بریم به سراغ اونها بریم دنبال اونها بریم قال انها اولائی ضیفی فلا تفضحون این قبل از این هست که لوت بفهمد گفت ای قوم من اینها مهمان هستم مرا رسووا نکنید با مهمانان من چنین عملی انجام ندید رسوایی برای من نیارید برای من بده. معلوم میشه که مهمان وقتی که در حریم میزبان میزبان وظیفه داره که از مهمان از جانش از آبروش از مالش حفاظت کند و الله از خدا بترسید ولا تخزون و مرا رسوا نکنید. اب اناد قوم را ببین قوم چه پاسخی دارد چه میگوید قالوا اولم ننحك عن عالمین معلوم میشه که قبل از این هم لوط علیه السلام از افراد مظلوم دفاع میکرده که قوم با او درگیر شدند و لوط نمیگذاشته در گذشته هم و جلوی مرد قوم را میگرفته بین اونها و بین کسانی که اونها میخواستن به، بهشون تجاوز بکنند لوط مانع شده که اونها یاداوری میکنند گذشته را که ای لوط ما تو را باز نداشته بودیم از حمایت همه مردم ان العالمین یعنی از حمایت عالمین تفسیر روح میگه ان اجارت احد منهم قبلا بتو نگفته بودیم که هیچ کسی را پناه نده معلوم میشه که وقتی که مردمی که مسافر بودند کسانی که قوم به انها تعروز می کرد یه جای امنی و پناهگاهی که انها می شناختند خانه لوت بود مگر در گذشته نگفته بودیم که پناه ندی اینها را عن اجارت احد منهم و حیلولت بیننا و بین بینهم بیت نگفته بودیم که بین ما و بین آنان حائل ما باش مانع ما باش مزاحم کار ما قبلا به تو گفته بودیم چرا بعض هم مزاهمی چرا بعض هم اینا رو پناه دادی چرا نمیذاری که ما به اونها دسترسی داشته باشیم اولم ننحک عن العالمی ما از همه مردم از همه عالمیان تو را باز نداشته بودیم که بین ما و بین اونها حال نباش قال هؤلاء بناتی این کنتم فاعلی لوت علیه سلاط و السلام گفت ای قوم من شما اگر نیازی دارید نیاز جنسی دارید خب این دختران من که در خانه های شما هستند در عقد شما هستند به اصطلاح ما خانه حلال شما هستند اونجا نیاز خودتون را برآورده کنید این کنتو فاعلین اگر شما این کار را می نیازی دارید اونجا چرا به محل حرام به محل تعدیی الله عز وجل جل اینجا از این ادخال الهی هست داستان هنوز ادامه دارد اما خدا تعالی به پیامبرش پیامبرش را خطاب می کند به جان پیامبرش سوگان می خورد که لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون به جان تو که آنان در سکره خودشون در اون نشه خودشون در ارز کنم که بلا نسبت مستی خودشون یا امهون دیوانه بودند اما سرگردانی را میگند دیوانگی را میگویند ببینید معمولا قسم به چیزی یاد میشه که اون چیز ارزش داشته باشه و خیلی برای انسان قابل احترام باشد گرچه برای ما قسم خوردن بغیر از ذات الله عزوجل درست نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودن فرمودند ما بندگان را مکلفان را انسان ها را که ما به غیر خدا سوگند یاد کنیم اما خود خدای عزوجل به مخلوقات ارزشمندش به مخلوقات انفسش علاش اون مخلوقات که بسیار عظیم هستند و بسیار ارزشی هستند به اونها الله تعالی سوگند یاد میکند مثلا به خورشید و شمس به ماه و القمر به آسمان به اماکن مقدس و تین و زیتون که خاندم اینها نام اماکنی هستن که در این اماکن بر انبیاء وهمی آمده و تین، و زیتون، و طور سینین و هاده البلد الامین چار مکان هستند لذا از اینجا معلوم میشه که الله عزوجل و جل حبیب خودش را پیامبر خودش را چقدر دوست دارد و چقدر پیامبر برای الله تعالی عزیز هست کہ اللہ تعالی بی پیامبرش سوگاندی آدمی کنی العمرو کا بی جانی تو اللہ ما آلوسی انجا نوشتے کہ معلوم بشی وما خلق الله تعالی وما زرع وما برع نفسا اکرم علیه من محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ونیا فریده خداوند درست نکرد و به‌وجود نیاورد نفسی را معززتر و با ارزشتر از محمد صلی الله علیه و وسلم و می‌گوید که وما سمعت الله سبحانه اقسم بحياه احد غيره من نشد تمام قرآن را بررسی کنید که الله عز و سوگند یاد بکنت به زندگی کسی بغیر از حیات محمد لعمر کا به زندگی تو به جان تو لذا این قسم زمن اینکه الله عز و جل واقع را دار کنه در لابلا یا اون جریان نشان میده که چقدر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکرم هست عزز هست اولا اشرف است افضل هست لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون بجانت و تو سوگند که انها در سکر و نشای خودشون در مستی خودشون دیوانی بودن و سرگردان بودن فا اخذت همو صحیحة مشرقین انها را صحیحة گرفت صوبگاهان مشرقین شروق سری صوب را میگن اول صوب بعضی میگویند که شروع اول صبح قیل اول العذاب کانه عنده صبح صبح شروع شد طلوع فجر کی شد وامتده الى شروع شمس اول فجر کی شروع شد یعنی صبح که آغاز شد ادامه داشت تا از به خدمت شما که خوشی طلوع کرد فکانت تمام الحلاک عند ذالک ناب... نابودی اونها و پایان عذاب اونها همین وقت بود چکار کردیم این شهر را فجعلنا عالیه لها قرار دادیم بالا را پاین و پاین را بالا یعنی سرنگون و امطرنا عليهم حجارتم من سجیل باران دیم برانان سنگهای السنگل ان في ذلك لايات للمتوسمين الله می فرماید در این جریان در این داستان آیات و نشاناتی هست برای متوسمین متوسمین یعنی اهل اندیشه اهل خرد متوسمین یعنی متفکرین همون اولو الالباب شما در جای دیگه خاندید بر اونها که فکر میکنن اونها که می اندیشن برای اونها آیاتی هست فاها و انها لبسبيل مقيم همان اين قوم لوط در راه در مسیر راه است در راه از كنم اصلی هست است در شهر راه راست است اونجا قوم لوط در اين که کسی كسيميره از حجاز به طرف شام در همین مسیر واقع میشه ان في ذلك لا ايه للمؤمنين همانا در این داستان و در این جریان آیه و نشانی هست برای مؤمنین برای اهل ایمان و ان كان اصحاب الاکه لظالمين الله تعالى نمونه دوو میں عذاب را ذکر می فرماید همانا اصحاب اکه ظالم بودن مشرک بودن أصحاب اکه کی ہاستند و کدوم پیغمبر برایشون شون مبعوث شد شما خاندید کذب اصحاب الائکت المرسلین می اذ قال لهم شعیب الا تتقون قومی هست که حضرت شعیب برایشون شون مبعوث شد خب اون که ما خاندیم شعیب علیه و السلام برای مدین و اهل مدین فرستاده شده و الى مدین اخاهم شعیبا بسیاری معتقدن که ایکه و, و مدین دو جای جداگانه هستند نزدیک به هم بودند الله تعالی شعیب را برای هر دو فرستاد هم برای اهل مدین فرستاد و هم برای اهل ایکه فرستاد و اما مرزشون یه چیز بود مشترک بود هم در توحید مشکل داشتند مریضی شرک داشتند مریضی غیر الله پرستی داشتند و هم در معاملات مشکل داشتند اهل خیانت بودند اهل فریب و دغل بودند در کیل و وزن خیانت می کردند هم اهل ایکه هم اهل شعب چون در قرآن وقتی تفصیلشون را می خانیم می بینیم که هر دو مریضی تطفیف داشتند این نظر بعضی از مفصلین هست اما بعضی دیگه معتقدن که دو قوم نیست دو شهر نیست یکیه ایکه و مدین یکیه شهر بزرگی بود اسمش مدین بود اما از آن جایی که درختانی داشت که جنگلوار بود باغاتی داشت جنگلوار بود ایکه میگوین جایی که انبوه درختان باشد گنجانی درختان باشد چون که همون مدین به صورتی بود که مثل جنگل و مثل ایکه بود لذا تعبیری دومی که در بعضی دیگه در بعضی جاهای دیگه برش شده اصحاب ایکه گرفته شده لذا دسته دیگر از مفسران معتقدند که این یک جا هست دو جا نیست علا ای حال این وَإِنْ كان أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَا هم همانا أصحاب اَيْكَة ظالمين بودن انها هم مشركين بودن شرك کردن فانتقمنا منهم ازانان انتقام گرفتين وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ ان هردو هم لوت وهم اَيْكَة ان هردو در شهراء واضح بودن امام ميقول ان مسیر اصلی و شهرای اصلی که هر کسی میتونست ببیند در این مسیر بودند عرض کردم در مسیری که بین حجاز و بین شام بود در این مسیر واقع می شدند هر دوی این شهر هر کس می رفت میدید که اینها در اونجا واقع هستند خب این نمونه دوم دو بود نمونه سوم سو عذاب را الله می فرماید وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ همانا تکذیب کردن اصحاب الحجر این سوره که سوری حجر هست به امین قاطر حجر سنگهای را و کوهای را میگند که معنی هست از خطر نمی خطر به ما برسه معنی خطر هست جلوی طوفان را میگیره جلوی سیل را میگیره خانه ها را حفاظت میکنه اینها در جاهایی که محفوظ بمانند برای خودشون خانه درست کرده بودند کوه را می تراشیدند در دل کوه برای خودشون بهترین ساختمان و خانه درست می‌کردند و ثمود الّذین جاب سخر بالواد در وادیها ها چیکار می‌کردند کوه را می تراشیدند و در دل کوه می‌رفتند و برای خودشون جای امن درست می‌کردند ولی معلوم میشه که در دنیا هر چقدر جایت امن باشه خانه کوه باشه کوه دیگه از کوه محکم تر نداریم خانه کوه باشه خدا وقتی که عذاب بیاره در همون غلعه های کوهی هم خدا ون نابودت میکنه عذاب بهتر اینه که انسان اول به فکر امنیت باشد از نظر ایمان با ایمان آوردن به توحید انسان امنیت خودش را حفظ کند لذا الله می فرماید ولقد كذب اصحاب الحجر تکذیب کردن اصحاب حجر مرسلین را صالح علیه السلام را تکذیب کردن اما تکذیب یک پیامبر مستلزم تکذیب همه پیامبران هست و اتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین ما آنها آیات من را ودلائل وحدانیت را دادیم دادیم دلائل دادیم فکانو آنها معرضین آنها از آیات ما اعراس کنند بودند وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمینین انها می تراشیدن از کوها خانه امنی خانه کے که هیچ خطری برای اونها داشته نباشد. اما وقت که ازاب ما آمد فأخذت همو صیحة مصبحین انها را صیحة و ان فریاد ان فرشته انها را گرفت فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون۔ فائده نبخشید دف دور نکرد از آنان آنچه که کسب کردند یعنی اعمال مشرکانه هیچ نفعی به اونها نداد اون سجده های لغیر ها غیر الله اون نظر و که برای غیر الله میکشتند هیچ سودی و فایده به آنها نبخشید و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق بعد از این سن مني از عذاب الله عز وجل دلائل عقلی بر توحید میاره اینها هم بر توحید بودن کسانی که منکر توحید بودن احوال اونها را ببینید عذاب اونها را ببینید به حال دلائل عقلی و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق نیا فریدیم ما آسمان ها و زمین را و ما بین انها را مگر برای اظهار حق حقیقت را نشون بدیم حقانیت خدای از و از مخلوقاتش از مخلوقات عظام مشخص میشه زمین و آسمان را شما اگر خدا را نمی بینید آثار قدرتش را ببینید زمین و آسمان را ازمت را پیچیدگی را و لطافتی که در پیداش اینها بکار برده شده زرافت را ببینید و این ساعتا ما نیا فرید آسمان و زمین را مگر بحق و این ساعتا این قیاس است همان طور که ذات قدیر قادر است بر پیداش آسمان و زمین قادر است که قیامت را هم دوباره قیامت را برپا بکنن دوباره انسان ها را زنده بکند و این ساعت لآتیتون اما نقیامت می آید اون ساعت اون که الله تعین کرده او آمدنی هست فصفح الصفح الجمیل این تسلیح هست بر ای که ای پیانبر تو اعراض کن اینا که یاوه میگویند گویند اینا که بد میگویند، اینها اینا که مسخره میکنند. از اینها ایراز کن، الصفح جمیل ایراز کردن زیبا، صفحه جمیل مثل صبر جمیل، همون ایراز کردنی هست که لا شک فی هیچ شکایتی، هیچ نوع گلایه نباشد، سکوت کن و روح خودت را از اینها برتاب و منتظر باش، ان ربک هو الخلاق العلی همانا ربی تو، اون ذاتی هست که خلاق هست. اون رب در آفرینش در پیدایش مخلوقات خلاق است خلاقیت خلاق هم مبالغه خالق هست و هم در خلاق نه تنها از نظر کمیت بلکه از نظر کیفیت هم مبالغه است بسیار مخلوقات بزرگی بسیار بازرافت الله تعالی آفریده و علیم هست دانه اس بر اساس علم خلق کرده و لقد که سبع من المثانی والقرآن العظیم تسلیح هست برای پیامبر عظیم الشان پیامبر وقتی که از کفر مخاطبان از عناد اون کسانی که پیامبر در میانشون مبعوث شده بود از اناد اونها ناراحت میشد از کفر اونها ناراحت میشد از ایمان نیاوردن اونها می میشد خدا یاد کرد که ای پیامبر من ببین من به تو چه نعمت هایی دادم تو با اینها مشغول باش ما به تو چه دادی ملاقات آتینا که سبع من المسانی ما به تو 7 تا از مسانی دادیم مسانی یعنی اون آیاتی که تکرار می شوند این آیاتی که تکرار می شوند چیه است؟ فاتحه است. سوره مبارکه فاتحه است. تکرار میشه در ابتدای قرآن مجید علتش را عرض کردم چرا سب من المسانی میگویند؟ بعضی میگن چون که دو بار تکرار شد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم آله. یک بار در مکه ناظر شد، یک بار در مدینه ناظر شد. بعضی میگن نه مسانی به این خاطر که بار بار خوانده میشه. در هر رکت نماز باید بخوانی، لا صلات ایلا بفاتحة الكتاب، لا صلات ایلا بامم القرآن. اصلا نخوانی نمازت ناقصه. پس چون که بار بار خواندمیشه و سبع هفت آیه هست، به این دلیل سوره فاتحه رو میگن سبع من المثانی معلوم میشه که این سوره فاتحه یک نعمت اعظمی هست، نعمت بسیار بزرگی هست که خدا تعالی عطا کرده. و ما قدر این نعمت را نمیدانیم اللهم يفرماید ما سبع من المسانی دادیم بشتو این نعمت خاصة والقرآن العظيم وبالخصوص بالخصوص بالخصوص من المسانی و همچنین قرآن عظيم را دادیم یعنی این قرآن را بخان با این قرآن خودت را تسلیب ده ببینید تجربه همینه که هر انسانی که از دشمنان خدا از سوی اونها ناراحتی داشته باشه نگرانی داشته باشه غم و اندوهی داشته باشه قرآن مجید را با تدبر تلاوت بکند تمام غم انسان از بین میره تمام پریشانی ها از بین میره چونکه در قرآن مجید حکایاتی هست نمونه هست از اغوام گذشته وقتی که شما می که خدا تعالی چگون بعد صبر و شکیبایی بعد صبر و تحمل دوستان خودش را نصرت و یاری میکند دشمنان را نابود میکند شما که اینها را می تسلی به شما دست میده آرامش می گیرید عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی هم می من هر وقتی که ناراحت میشم و فشار زندگی بر من فشار بیاره به بی اعصابم فشار میاره به روانم فشار بیاد من قرآن میخانم قرآن که میخانم قرآن مرا سیر میده مرا به می میبره وقتی که میرم گذشته را نگاه میکنم میرم وعده های پروردگار را میبینم کاملا آرامش میگیرم غم و اندو هم تمام میشه لذا الله تعالیٰ بعد از مخالفت دشمنان به پیامبر گفته که ببین ما به تو نعمت دادیم عفتا از مسانی دادیم و همچنین قرآن عظیم دادیم این نعمت نعمت معنوی هست لذا دشمنان چه نعمتی دارند نعمت, دارن؟ نعمت مادی دارند اگر انها نعمت مادی دارند و شما ندارید شما نعمت معنوی نعمت دین نعمت قرآن دارید یه وقتی چشمت را ندوز به اونچه که به اونها دادیم چون چیزی که پیشه تو هست ارزش داره اون چیزی که تو داری نفیس قیمتش ارزشش خیلی بالاست قابل مقایسه نیست لا تمدن عینیک که ما مطعنا به ازواجم منهم چشمت را به اون سمت نبر و چشم ندوز به اونچه که ما متعنا بهی بحر دادیم استفاده دادیم انرا ازواجم منهم از ازمین متعره به کفار انواعی مختلفی به از کنم کفار مختلف ازواجم منهم به انواعیشان به یهود به نصاره به منافقین و لا تحزن عليهم و بر اونها هم نراش نرهت هم نباش چون که تو نعمت بزرگتری داری وخفظ جناحک للمؤمنین و شما دوبازویت را برای مؤمنین پایین بگیر یعنی در مقابل مؤمنین از خودت توازن نشان بده نرمش نشان بده هر چی که اونها دارند رسیدگی کن به اونها توجه کن و اون کفار که حرف تو را گوش نمی کنند همین مؤمنین برای تو غنیمت هستند اینها دربر تو هستند و به کفار بگو وقل قل انی انا النذیر المبین من محمد صلی الله عليه وسلم نظیر نذیر هستم درساننده آشکارای هستم از عذاب خدا شما را میترسانم کما انزلنا علی المقتسمین همان گونه که ما نازل کردیم بر مقتسمین مقتسمین کسانی که تقسیم کرده بودن بین خودشان بعضی گویند که مقتسمین کسانی که سوگان دیاد کرده بودند سوگند یاد کرده بودند که جلوی پیشرفت دین را بگیرند جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند نگذارند همان گونه که به نه نفر از اون اوباش هم مقتسمین میگفتند اونایی که سوگند خوردن که ما نیم شب صالح را از بین میبریم و بعدا به اهلش میگیم ما خبر نداریم اونا هم مقتصمین اینا هم سوگند یاد کرده بودن برای جلوگیری اسلام و جلوگیری برنامه های رسول الله صلی الله علیه وسلم اما بعضی دیگه از مفسران میگوین مقتسمین به معنای تقسیم است. اینا چند نفر بودن ورودی های مکه را با هم تقسیم کرده بودند میگوین شانزده نفر بودند اینها هر کسی که به مکه می آمد راهایی که به مکه می رسید شانزده تر بوده از هر طرف مثلا از طرف مدینه از طرف جده از طرف طائف از طرف فلان روستاها فلان قسمت شمال جنوب شما فکر بکنید این شهری که ما داریم چند تا ورودی داره یک ورودی از طرف شهرهای بزرگ کرمان و و تهران میاد یک ورودی از طرف مشهد و زابل میاد یک ورودی از طرف جنوب میاد یک ورودی از طرف غرب میاد یکی از شرق میاد چندین ورودی داره چندین مسیر داره که میاد داخل شهر میشی مکه هم همچنین از هر طرف وارد می میشدن اینا را که تقسیم کرده بودن که اینجا بشینیم و به مردم تبلیغ بکنیم شانزده تا ورودی بودند لذا در هر ورودی و در هر عقب از اعقاب مکه و از ورودی های مکه یکی از مشرکی نشسته بود هر که می آمد به حج می آمد به قصد زیارت خانه خدا می آمد او را می گفتند می گفتم ببین اینجا یک نفری هست تازه ادعاهای دارد شاعر هست یا صاحر هست یا کاهن هست یا مجنون هست ببین حرفش را گوش نکنی به این صورت بیخواستن که جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند خداوند برای اینها عذاب نازل کرد همه اینها از بین رفتن یا در بدر از بین رفتن یا بعدن و عذاب اصلی در قیامت هست لذا الله می کما انزلنا علی المقتسمین همانگینه که ما با تقسیم کنندگان نازل کردیم الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ اونهایی که قرآن را چی کردند؟ تک تک, تک کردند یعنی اونها قرآن را به اسطلاح قرآن را قبول نداشتند و بخش بخش کردند قرآن را حرب به این معنی بود که هر بخشی را به یک نامی یکی گفت سحر یکی گفت شعر یکی گفت كهانت یکی گفت جنون به این خاطر آنها را ازین میگویند که یعنی قرآن را تک تک بخش بخش کرده بودند علامه قرطبی این جا نوشته قال مقاتل والفراء وهم عشر رجلا اینا چند نفر بودن شانزده نفر با اسام الولید ال... وليد بن المغيرة انها را تعيين وليد بن المغيرة ايام الموسم در ايام الموسم حج فاقتسبوا اعقاب مكة وانقابها وفجاجها انها باهم تقسيم کردند ورودها مكة را یا ان وادها وراهايك بمكة داخل می ويقولون لمن سلكها هر کسی که وارد مکه می شد داخل می شد چی می گفتن لا تغترو بهاز خارج فینا این کسی که جدیدن از میان ما خارج شده و از میان ما ادعا می کند ادعا پیانبری می کند بی بی فریب نخورین لا تغترو ید این نبوه فا مجنون این مجنون است و ربما قال ساہر و ربما قالوا شاعر و ربما قالوا کاهن یه بار میگفتن شاعر یه بار میگفتن این متفرق و گروه گرو به همی مانه هست.الذین جعل القرآن عظیم اللهم فرمای ف و ربکا نسألن نهم اجمعین سوگند بدنا بذات الرب سوگند به پروردگارت ما سآل می کنیم همگی را اما کانو یعملون از آن کاری که اونها میکردند از همه میپرسیم اما تو پی پیغمبر داشته نباشت فسدع بما تو امر آشکارا بیان کن آنچه که امر میشی از جانب خدا یعنی هیچ خفایی نباشد در تبلیغت پوشیدگی نباشد آشکارا بگو اینا ما تو را کفایت میکنیم از مسخر کنندگان این مسخر کنندگان گروه دیگر از مشرکیم بودن اینا همیشه پیغمبر را مسخره میکردند میگویند که پنج نفر بودند ولید ابن مغیره که الان خاندیم سردسته مقتسمید عاصب ابن وائل اسود ابن عبد ابو زمعه و اسود ابن عبد یغوس این پنج را نام بردن مستحزین اینها کسانی بودن که بیشتری تمسخور و استهزار اینها انهامی کردن این کفیناک المستحزین ما تو را کفایت میکنیم از مسخره کنندگان اون مسخره کنندگان اوصافشون عمل کردشون الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر أن هاي قرار ميد أنهم ربا خدا مع بود فسوف يعلمون ديري نخاهت قزاشت أن قريب ميدون أن كونها تشج جنايات در مرتكم ميشمنت ولقد نعلم أن جبازم تسلية خداون براي رسولش وبراي حبيبش ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون همانا ما می دانیم که شما سینعت تنگ میشه و دلت میگیره به اون که اونها میگویند دل رسول الله می گرفت حزین بود دائما مغموم بود پریشان بود الله تعالی تسلی می ده ببینید تسلی خداوند در وقت غم با چی چیزهایی است ما هم گای مغموم بشیم خودمون را با همین چیزها تسلی می و بدیم آرام می گیریم فسبح بحمد ربك و کم من الساجدين الله می فرماید تسبیح بگو هم همراه با حمد ربت تسبیح و حمد پروردگار یعنی ذکر خدا اولی تسبیح است دومی حمد است سومی سجده است و کم من الساجدين این علاج سوم هست سجده کن خدا را و این سجده تا کی باشه استغامت کن یک شب و دو شب نه وعبد ربک حتی یعطی کل یقین رب عبادت کن تا که مرگ بیاید یقین یعنی چه؟ مرگ ببین چرا به مرگ میگوین یقین چون هر چیزی که در دنیا نسبت به او اگر شک داشته باشی ولی در مرگ و آمدن مرگ هیچ که شک ندارد هم کفار قبول دارند که مرگ می آید همون غیر کفار دارای هر مذهبی باشی در دنیا ببین تمام مذهب یهود، نسارا، زرتشتی ها، مجوسی ها، مسلمانان همه مرگ را قبول دارند هیچ کسی مرگ را انکر نمی کند تا حالا نبوده هم کسی مارگریت کار کن بی این خاطر مارگریت میگند یقین اما بعضی از افراد جاهل و بگیم که سوییای جاهل کسانی که در قرآن مجید تفسیر برای می کنند، اونها میگند وعبود ربک حتی یکی یقین اونها میگن یقین یک درجه ای هست. در تصوف که انسان به درجه و به جایگاه یقین برسد خدا را گویا میبیند لذا میگه تا اون زمان عبادت کن بعد از این که به یقین رسیدی دیگه عبادت لازم نیست بیام این خاطر بعضی ها گمراه میشند شیطان فریبشون میده میگه تو الان بید درجه یقین رسیده به درجه یقین که رسیده نه نماز می خاند نه سجده می کند فقط تسبیح به دستش شد میگه شما با ما کار داشته نباش شما نماز خودت را بخون با من حرف نزن تو نمیدونی من درد به چه جایگاهی هستم این گمراهی هست این جایگاه جایگای چیه؟ گمراهی هست جایگاهی که انسان را بگه که نماز نخ اگر واقعا چنین این بود؟ قبل از این جایگاه، قبل از این به این جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده بود. او نماز خواندن را ترک می کرد. شما خاندید در احادیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین روزهای زندگی باچه زحمتی، باچه مشقتی با تکیب دو نفر پایش می خورد، کشان کشان خودش را به صف نماز می رساند. یعنی آن حضرت به این جایگاه نرسید تو رسیدی که آن حضرت با اون مشقت و با اون رنج میره نماز میکنه لذا این تفسیر تفسیر من آوردی هست تفسیر بر رعی هست تفسیر گمره کننده هست که کسی بگه یقین یعنی وقتی به حد یقین رسیدی در باره خدای از و جل بعد از اون نماز بر تو لازم نیست عبادت برتنا لازم نیست لذا حضرت رسول صلی الله علیه و اسلام برای اینکه بنده از نقل هم برای شما بگم که یقین به معنی موت هست یکی از صحابه رسول الله مریض بود عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی رسول الله به عیادتش آمد اینجا که آمد اینجا وقتی که رسید عثمان فوت کرد در مسند امام احمد هست رسول الله فرمود فقد جاءه اليقين و اني لارجو له الخير این به یقین رصید یعنی موت شامد به موت رصید و من امیدوارم خدا برای این خیر بفرماید واس ببینید یقین در حدیث امام احمد به معنی چی هست موت هست و عبد ربک حتى یاتیکل یقین پس معنی دیگری ندارد